احوال الجدتی حالات جده مادر بزرگ وللجدتی از و مادر بزرگ سهمیش یک شیشون هست لئم من کانت او لئبن چه این مادر بزرگ مال مادر باشه چه مادر پدر باشه مادر بزرگ چی مادری باشه چی پدری سهمیش یک شیشون هست واحدتا کانت او اکثر چی یک نفر باشه چی بیشتر یعنی اگر در مسئله یک مادر بزرگ وجود داشت سهمیش یکیشون هست اگر در مسئله دو مادر بزرگ وجود داشتند که هر دوتا عرص می بردند اونجا سهمی همین یک هست بین دوتاشون تقسیم میشه. شه دیگه بیشتر میشه. البته ایده کنن ثابتات زمانی که ثابت باشند یعنی صحیح باشند جده صحیحه باشند جده فاسده نباشند اون جدی نباشند که از ارث محروم هست قاعده جده صحیحه یادم نمیاد که آیل قبلنا توضیح داده باشم یا نه ولی به شکلی ساده بگم جده صحیحه یا جدی که عرص میبره اونی هست که به میت وصل میشه با زنان خالص یعنی بین اون و میت همش زن باشند مانند مادر مادر مادره مادره مادر که هیچ مردی بین اینا وجود نداره خالی زن هستند زن محض هستند و همچنین مادر بزرگی که از طریق مرد وصل باشه مانند مادر پدر یعنی بین این مادر بزرگ و بین میت فقط مرد وجود داره یا مادر پدر پدر یا حالت سوم مادر بزرگی ارس میبره که با میت با زنانی وصل بشه که به مردی میرسند مادر مادر پدر مادر مادر پدر اما اگر بین دو زن مردی فاصله باشد در این صورت اون مادر بزرگ ارث نمی بره این قاعده ای است برای تشخیص مادر بزرگ غیر وارث غیر وارسه یا مادر جده فاسده یعنی وصل میشه با میت با شخصی که اون شخص ارث نمیبره ماننده کی ماننده مادر پدر مادر ماننده مادره، پدره مادر پدر مادر میت مادری داره اون مادر پدری داره بعدش اون پدر مادر داره این مادر ارث نمیبره این مادر بزرگ ارث نمیبره چرا چون بین اون و بین میت مردی واقع شده است. بین دو تا زن مردی فاصله شده است. پس مادر بزرگ یا مادر بزرگ فاصده اونی هست که به میت میرسه با شخصی که اون شخص میراسبر نیست. چون پدر مادر بر نیست. پدر پدر ارز میبره از شخص. ولی پدر مادر عرض نمیبره چون پدر مادر عرض نمیبره اگر این پدر مادری داشته باشه اون هم عرض نمیبره و, هم و, هم و پس کسی که بین اون مادر بزرگ و بین اون میت زمانی که بین اون مادر بزرگ و بین میت مردی باشد که قبل از اون مرد زنی بوده است مانند مادر پدر مادر مادر پدر مادر زید فوت کرده مادری داره که این مادر پدرش مثلا بکر است، بکر پدر بزرگ زیده ولی از طرف مادرش بکر از زید ارث نمیبره چون بین بکر و زید زن وجود داره حالا همین بکر اگر مادری داشته باشه این مادر جده فاسد زید هست چرا؟ چون بین میت که زید باشه و بین اون مادر بزرگ شخصی وجود دارد که میراث نمیبرد. برد اینو میگن جده فاسد حالا پس احکامات جده رو بگیم جده یک میبره چه مال پدری باشه چه مال مادری یک نفر باشه یا بیشتر زمانی که صحیحه باشند ارث میبرند البته متحاضیاتون فی درجه در درجه باید با هم برابر باشند در درجه باید با هم چه باشند برابر باشند چون اگر یکی نزدیک بود اون دورتره رو محجوب میگردند اگر یکی نزدیک بود اون دورتر رو چه کار میگرداند محجوبش میکنه دیگه دورتره. اونی که فاصلش به مایه دورتره اون ارث نمیبره مثلا شخصی فوت کرد مادر مادرش زنده بود و مادر پدرش اینا هر دوتا عرص میبره هم مادر پدرش عرص میبره هم مادر, مادر مادرش چرا؟ که در درجه با هم مصابی ولی اگر شخصی مادر مادرش زنده بود و مادر مادر, مادر مادرش اون موقع اون دوره دیگه محجوب میشه پس متحادیات اذا کنه ثابتات متحاضیات فی درجه زمانی که جده صحیحه باشن و در درجه هم با هم مساوی باشن و یز کل هن بال امی و ساقت می شوند همه مادر بزرگ ها با مادر شخصی فوت کرده است مادرش زنده است مادر بزرگ مادریش و مادر بزرگ پدریش مادر بزرگ پدری و مادری ارث نمی برند چرا؟ چون مادر میت زنده است و قطن کل هن بال ام و ساقت می شوند. یعنی جدات تمام جدات همهشون چه پدری باشن چه مادری بالعم با مادر پس اگر میت مادر داشته باشه دیگه مادر بزرگ ارث نمی بره حالا چه پدری باشه چه مادری والابی والابویاتو ایوان بالابی مادر بزرگ های پدری ساقط میشن با پدر مادر بزرگ های پدری با پدر ساقط میشن یعنی شخصی فوت کرده است پدر دارد مادر بزرگ پدری دارد و مادر بزرگ مادری. پدرش ارث میبره، مادر بزرگ مادری ارث میبره، اما مادر بزرگ پدری ارث نمیبره. چرا؟ چون اینجا مادر بزرگ پدری به واسطه پدر با میت تو هست، و اینجا پدر خودش زنده است. اما پدر نمیتوانه مادر بزرگ مادری رو ساخت بکنه. پدر نمیتانه مادر بزرگ مادری رو ساقط بکنه و کذالی که بالجدی و همچنین مادر بزرگ ها مادر بزرگ های پدری البته ساقط میشن با پدر بزرگ الا ام الابی و این علت مگر مادر پدر و اگر چه هم بالا ترون چرا مادر پدر؟ ساقت نمیشه به خاطر که مادر پدر به واسطه این پدر بزرگی که زنده هست عرص نمیبره بلکه زنش همانطوری که پدر بزرگ اینجا عرص میبره مادر بزرگ هم عرص میبره شخص فوت کرده پدرش زنده نیست ولی پدر بزرگ و مادر بزرگش که یکی پدر پدرشه و یکی مادر پدرشه اینجا ارث می‌برند هر دوتا این مادر بزرگ به این جد محروم نمیگردد. هرچی هم بالاتر رود. مانند مادر مادر پدر. ببینید همانطور که پدر پدر مادر پدرو پدر میت رو از ارث محروم نکرد مادر مادر پدر رو هم نمیتونه محروم کنه چرا؟ چون مادر مادر پدر از طریق این پدر بزرگ وصل نمیشه با میت نسبش از طریق این به میت نه نمیشه اما اگر خود همین پدر بزرگ مادری داشته باشه ساقت میشه اگر خود همین پدر بزرگ یعنی اگر مادر پدر پدر به وسیله جد ثابت میشه ولی مادر مادر مادر مادر مادر به وسیله جد ثابت نمیشه فانها ترث مع الجد یعنی مادر پدر و انعلت علت ارث میبره همراه با جد لانها لیست من قبله چون مادر پدر از سمت این پدر بزرگ ارس نمی بره چون مادر پدر میت هست ارس می بره چون مادر پدر میت هست ارس می بره و نقطه بعدی در مورد جدات و من ای جهت کانت تحجب البعدا من ای جهت کانات مادر بزرگ نزدیک مادر بزرگ دور رو ساقط میکنه از هر سمتی که باشه فرقی ندارد مادر بزرگ نزدیک از هر سمتی که باشه هیچ فرقی نداره مادر بزرگ رو که فاصلش دورتر باشه به مئیت ساقطش میکنه از عرض البته این در نظر فقهای های اهل سنت اختلافی هست گروهی بر این باورند که مادر بزرگ مادری نزدیکش اگر این مادری باشه مادر بزرگای مادری اونایی که نزدیکترند اونایی که دورن مال پدر رو محجوب میکنند ولی مال پدر نمیتونن مال مادر رو محجوب کنند اما نظریه احناف و شوافه همین هست وارثتن کانتل قربه او محجوبه حالا این مادر بزرگ نزدیک چه ارس ببره چه محجوب باشه دوره رو ساقط میکنه این مادر بزرگ چه ارس ببره چه نبره مادر بزرگی رو که فاصلش با میت دورتر هست محجوبش میکنه اون هم از غرف محروم میکنه و اذا کانت الجده تو ذات قرابت و زمانی که جده از یک سمت فقط نزدیک باشه به میت مانند این که مادر مادر پدر باشه مانند مادر مادر پدر یعنی مادر مادر پدر شخصی که فوت کرده از, از از طرف پدر فقط نوه اون مادر فس زمانی که و اذا کانت الجده و زمانی که جده باشد ذات قرابتن واحده از یک سمت فقط نزدیکی و فامیلی کنه با میت مانند مادر مادر پدر وال ذات قرابتن و اون یکی دیگه مادر بزرگ از دو جهت نزدیکی کنه خیشاوندی کنه با میت او اکثر یا از جهات بیشتری که ام ام الام مانند مادر مادر مادر و هی ایدان ام قبل این مادر مادر مادر مادر پدر پدر میت هم باشه خب بخشون تو قسمت ما بلونچا این دیگه خیلی زیاده شما میبینید یه مادر بزرگی دو تا فرزند داشته یه پسر مثلا یه دختر اینا که فرزند دار میشن پسر این خواهره میاد با دختر اون برادره ازدواج میکنه خب مسلنه فرزندی که حاصل میشه از دو جهت با این مادر بزرگ نزی ولی یکی دیگه رو داریم که نه فقط از یک سمت نویش میشه یا نبیرهش میشه میگه و زمانی که مادر بزرگ از یک سمت نزدیکی کنه فامیلی کنه با میت مانند مادر مادر پدر و دیگری از دو جهت تیشاوندی کنه با میت مانند مادر مادر مادر که هم تونین مادر پدرش هم حساب میشه. میگه به هر صورت یک قسمت صد تو بین ابو يوسف انصفان با اعتبار الابدان. میگه یک شیشام در نزد امام ابو یوسف نصف نصف بین این مادر بزرگ و اون مادر بزرگ تقسیم میشه. هر دوتار یک حساب میکنه. به جهت ب... اینکه یک نفر هست یعنی چی از یک جهت مادر بزرگ شواشه چی از دو جهت هر دوتا رو سهمیه مساوی میده خاطر اینکه این هم یه نفر اون هم دوتا مادر بزرگند. و اما عند محمد با اعتبار الجهات و نزد امام محمد البته قول زفر و حسن ابن زیاد هم است. یک سوام میده به اعتبار جهت یعنی سه جایش میکنه دو جای این میراسو دو جای این یک شیشمو به اونی میده که از دو جهت نزدیک هست از دو جهت مادر بزرگش هست و یک سوامو به اونی میده که از یک جهت مادر بزرگش هست این نظریه محمد بود که به این شکل حالات مادر بزرگو توضیح دادیم پس مادر بزرگ سهمیش فقط یک شیشم هست ولی حالات مختلفی که داشت چه موقع ساقط میشون اینا همیشون مفصلن توضیح داده شدن و الحمدلله باب سهمیه ها طریق فرض تمون شدن الله در درس بعدی باب اصبات رو توضیح خواهیم داد